الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین رسول الله و آله طیبین و المعصومین و لعزه دارم سعران اللهم اخشه و و که دیونی درود آخری درکیم روشن نشد من این رو آخر شد فیضه سوال تکرار کنم برده اون وحثیت دردیش رانچه به عقل حجرت بر قضاقت بود که توضیحات اشتاده شد اون جمع نهاری نهایی رو امس کردیم ادبه ای غالت هستم به حرمت عقل حجرت با جواز اختضاق کرد به تلمان باشه اما حرمت عقل حجرت در طرف از متخاصمه امس که عدله ای که من پیل اصبار بیدم چون بیدم آخر ادله ای که اعافی شده یک صدقه رشوارش میکنه. کنه فقط تقدمم که بعضی در در شاهدش باشی فرده از بارات لغمی این با که اصباتش خیلی مشکله بجرت با رشو فرموند بجرت بیرد رشوار رشو نمون فهمه اروپی که که انسان بیده که نفس اون حکم بشه یا این باطی جور اصبات ب اما اینکه که بیا با این آقا قضابت کن صدق ست. رشوه برای این بسیار بسیار مشکل این روشندی صدق رشوه البته خوبه افتاد کنید ما گاهی اون آقایت بحثی رو مطرح میکنید بعد می این در خلانجه اون آقا این طور نوشید. بعد این هست امدهی از در از, از نصوص بوده که حجرت هم یه نور شد امدهی از شواهد تاریخی هست که افراد نسلم که یه عبارت خود شبکانی رو خود من از وقتی خالیشان هیچ حدیهی از کسی قبول نکرد. این هایچ در طول تاریخ اسلام 1400 سال افراد مختلفی بودن افرادی بودن که جعل حدیث میکنن بخاطر اون مال و منال دنیا افراد یعنی که در کمال وره و تنواز نگی میکردن مثل همون شخصی چه در خواهد آورد و من حیات شلتط من اوان زنن افته خود بذا زننده این تو اوان میید تا قوان توی به تو نق می توشیدا خب حا بودن در تاریز اسلامی ما افراد زیادی داشتیم که فوق العاده در این اینجاها باوره و توا و پاپ دانی و یک حالات مخصوصی سحت اینکه برایتون کشته رو بهتن برای اون مسله خلقر آن اددار و کش ماسسه معبازار ها احمد و نه همبر که میگن چند نظر می داره اون این سربیز شلاق میزد این بودن دارو خلاف تا 20 شلاق دادم اون میگفت نه قبول نمیتون قرآن مخلوقه و آخری خدا برای این بوده در میان عقله سنت در شیعه زیاد بوده یکی اموره تمام بوده اینکه ما با از این کشو وحکمی میکنین این مشکلی خودان اصلا نیست داره که به عمر نه عمل عادی اصلا حجی گفت من نمیگم اون قد قبلیا میگه خب اون قبلیا افساد پاکی بودن اما الان وق خب خلیفه خلیفهام بوده دستشان باز بوده معذالک کارهای رو به اصطلاح که منافی با خیر جا شده در طول تاریخ ما داشتن بحث و این یاد نیست اونم که 10 شاهد از سنی شیعه ای در این جریانی اما وجود این شواهد مهم مشینه که به یک حدی رسید که ما استکشاف رفتنش عالی بود و ما اخلاقی میشه وقتی ایراد علم یا خود دهل بیت دیگران میگم امام صادق امام اول سلام الله سلام علیکم که صبر که این حارم بیاد و پولش رو بدهیم مثلا بقاء زننده علاقه داره به همراه تن اینام هم از ورا تاسو مثلا نام که عصرزا هستند در دفتر خلافت به مسئله در مساله ولی عکس نفس از بعضی از بزرگان فکر میکن درو باشن لوای سرون بزرغا که یکی که اگر علی بشه تا خلیسته امام است اینطور اون طرف الان شده که صداش بوخته چون تو, تو. ما و تو تن کرف این شعری تو میزنی امام امام هر از اینکه ما انوار مختلف داریم این که مثلا بگیم کاشیم عکسش رو جواز بگیریم پیش داشواد این حل دیگه چه می‌کنه به کلی با مجموعه شواهد لغوی و ارشی حالا لغویش شاید با خاطرش که مثلا قاموسی چیزی گفت اما شواهد ارضی قطعا این طوره که جور چیزی رو رشوه نمیدونن مطالبا بینید که در روایات ما و بعض روایات همستان نداره رشوه قیصده به بک ما از کن روایات محترقه رشوه ندارید در بک ندارید اون که بده و اندازه اصلافا سه طور عجب درش مشکل و با چند تا شاهد هم مطلب هم نمیدونه دلیل دوم منها اجور قضا که در روایات آمده و تجور و قاضی از در آمده. و در روایت داره بل اسلام داره کره انیه خدا رسول این مجموعه روایتی که در عنوان قجرد یا عنوان اجران راست اینا هست اما وصول اینها به حد حجیت محلش کاری به ساخر این من ها حضور رو گذار سندش هم بد اون احتمالا تفریع بود در اعمال بلاسی داره این دو خیلی دیگه هم به داره سندگی ساو یاد به کتاب داره الهلاله سردی مشکل سندی داره مثلا از این حجج دیگه که در باب اجرت آمده عرض کردم سنیام دارم ما هم داریم سنی از عمر داریم ما هم علی 50 داریم تصریح هم داریم این هم سلام در حجیتشه به الا اجمالا چنین جایی وجود داره دقیقاً هم دارم تأیید می‌کنم بخش سوم اجازه اجتماع که از مثلا خصوصا اهل سنت هم دایم موقعیشون داره یعنی انصافا خوب خیلی ما می‌بینی مخصوصاً از بزرگانه بعدی ما مثل خدا رو خیمست هم اینا قاید نیستن که حجرم حرام باشه برای قاضی که پولی که از این وجه ثبوت شد. وجه چهارو در مسئله اینی که این با, با جزو واجبات عقض اجت بر واجبات میشه. این مطلب مطلب بدینیست. این شالله دالا تفصیلش رو باید بعد عرض بکنیم. و عرض کردن کنالا توی بحثیست خودش. به وجود طبیعتن منافیز با وجود, وجود بیا، این با احضا حجات منافیز یه این اصفاتش مشکله اصولا من یک بحثی و مثلا هستی آدم به یک صورت این بحث رو خوبیه و خودشون مخید حدیث نفس داشته و اصلاحش فکر بکنیم این که حدودی که ما از یک رواید که مثل اصلا میگه در رو باز کن این قانون چه میفهمیم چه مقدار می احکام حجات در اصن بعضیا گفتن این فقط ذاتاً درس نکنه بعضیا گفتن نسبت باعثیه نسبت که حرف دروسی ندارند میشه چون نسبت بعد از باعث حاضر یعنی یک نسبتی که بعد از اینکه باعث اومد یک نسبت جزء میشه بین باعث و مفعول و مفعول ص اطلاق این نسبت انتزاع میشه این مفاضله خودش نیست که گفتن بعضیا اون گفتن در باصط هم یک است باعث از این هیچی دیگه از این در نمیده یعنی که ما شما گرفتیم گستیم آهار گرفتیم گرگیم یا مثلا برو بیرون که این آهار بیرون قیلتی بیر. میشه نیست، قیلت ده. ده هیچی نیست دیگه بعضی دیگه گفتن نهانی شده دیگه از میشه مثلا مفاده شیده که این مطلب رو در ذمه اون میبینه دیگه همجبه این هی مفاد مفاد مفاد استخابه رو چیلی هر پایش نیست که من الان اینجا یکی از اونا هم همینه وقتی گفت در باز کن که ام نمان این گفته این در باز کردن باید مکیانی بشینه این در باز کردن دیگه عملشون است مال این در باز کردن این دیگه تو است اگر عمل عمل نشد اخراج دادن میکنیم مثل مثال دو تا از که در بازش کرد در بازشون که یه ده صد زمان در باز کن. که درمه من معمول کرده سایی دهنان میتونه پول بگیره برای دروازه کردن؟ مثال عرفی بسیط شروع میکنی بریم به بازلان اما این بکنی نقطه اینه که از دروازه کن در میاد این مطلب. مثلا؟, مثلا در بیاد که عمل بود یه ارزش دارید چون اصل اولی احترام عمل بسیطن فهمونه. این ادعای اصل وجود اینطوره. بعضی‌ها وجود اعین اینطوره بعضی اون بحث دیگه‌ست. اصل سوال اینه که آیا خود وجود مفادش یک حکم واقعی به این معنا که این عمل دیگه عملتونی نیست. احترام نداره. یا مفادش اینه که این عمل رو مجانی انجام بگیره این آخر یه بحث کوبروی تحلیل خطابات قانونی یک بحث کبرلیست است، یک بحث بسیار است. در رواید داری که شما اگر تردیل کردین کفاره داریم اون مفاد کفاره بدین چیه مثلا شما به مالی داریم تکاریفه عملی داریم بدنی داریم مثلا کفاره بدین فقط تکلیف شما رو وادار بکنه فقط بحثه حالا کفاره نداز بون از پودش درگیو نه اون رو تکلیف درگیو جا مرگیو برد یا نه وقتی میگرگرگی این کاری کلی کار کلی کرد بده بیر از بعض در زمش هم هست یه بوسه تو زمش هست اگر مرد بعد از مرگش باز بده ده این پرداختش تو زمش هست ده سالم بهمون تو زمش هست حتی اگر مردم باز تو زمش هست. این مرحلی دوم دو مرحله مرحلی ثبوت بگیم نه هم بعثه هم در زمه هم هم اضافه به این تعلق خارجی هم پیدا می مثلا اگر فرصه این شخص دارید اون گوصفن تو خونه شده حالا رفتیه مکان تبدیل انجام داد بگیم معنی این که تو کفاره بده کفاره تزدیلی اون گوصفن در که بقرار شد اصلا که از اون که خارج شد این کفاره به مفهوم که نگید پس این شد بعثه با این خارجی. الو تو هم دلار من نبود که شکری احتمال تو هیچ مال این خارجی نبود. من نبود. تو مطمئنم هیچ کسی تصویری به این خارجی نبود. و هیچ کسی نگفت که ای در هر مرکب کاری شد یه بوسه نگه تو خوندنش بوسه نه از مکش خارج میشه میشه میگویه آماده تعلق به اینو. من فعلا میخوام برای شما تصویر بکنم که روشن بشه. این تحلیل قانون بحث دست کبری است. احساسی به این مار نداره. من هم نمی‌نامم. ولی از و مثالهای های دیگه هم یعنی موارد دیگه مثلا اگر نماز بخون خوب دقیق بگم ببین نماز بخون یک مفهوم میشه اینه که شارع می... فقط بحث نیست شارع می‌خواد نماز در تو در خارج محقق بشه دقیقاً این چه نکته داره که ساله نگاش نکنید فقط اینه که شما بر نمازون واظارتون بکونید نتیجه نتیجه اگر خراب نماز یکی که ازشون حکومت اسلامی بود افرادو تعجیر بکنه تا نماز بخونن چون نماز کنن باید تو خواهش محقق بشه. کار بازم این برده ده اصلا خود نماز بکن مهمش مثلا اگه پدر گفت به در باز کن باید پدر کاری بکنی که این پسر یا مادرش یا بردرش که این در باز کردن محقق بشه اصلا مفهوم در باز توش خوابیده در باز کن قیل از بعضی از اصولین اگر درکت کنید محکوم هم رو فقط درستی هسته یک چیز از این مقایی توش نه بس این باید الان از کم شاید به این صورت در این کتاب محرم نشده این باید خودتون بشید با حسابه خودتون ورنداز بکنید که از این کلمه در باز چند تا مطلب در میاد این به التضام میتنید یا ده ده ده ده ما در مباحث ارتی نه التضام مباحث انتظام نه التضامان الاسم که در امور حقیقی از وقت دیدن دود تجاره به آتش میکنی یا خلان میکنن توی مباحث ارتی ما به جهت ارتی برداشتیم به جاش کلمه استفسام اصلا توش خوابیده اینا تضمن به کار ند استفاده ابتدوا اون اقسام جلالات تو مستن تو مبای به کار ما میگیم تو این مستتن این مطلب هست مندمگه یا انقاد یا استثان اصلا توش این معنا خوابیده اصلا توی مثلا آقای میگن توی تکالیفی که مالی باشه طبیعت تکلیف مالی ذمه است طبیعتش اون است نه بدنی راستش تا که نمیخوام بگم مثلا درست سره میخوام بدم که مطلب روشن بشه این یه سری مباحث ماست که ما ازش تعبیر میکنیم به مباحث استقرایی و در این حال تحلیلی بمانمون یعنی یه زیر بناه های تحلیلی داره و از زیر بناه های تحلیلی ما استفاده میکنه یه دیگر همین مانند اگر گفت این کار انجام بده آیا مفادش اینه که نمیتونه پول بگیره با اون با تحلیل بشه چرا نتیجه گیری گیره بگیم مفاده این که در باز کنه این کار باید منجانه است مفادش اینه نه تضمان نه التضامه یه نوع استبتان البته این که آیا اینها استبتانه یا چیز دیگر یا نه هست ما هفش معنی احتمال دادیم این که بایدان باید رو گیم که چند باز برستم رو بایدان بایدان رو, برستم رو وقتی مونابسید حالا تدامه استبتان رو به لفظه احتمالی بگیم این شده وقتی یه اون ما چون این تعدد معانی یک نکته بسیار مهمی در ن اصال بحثی که لازره نهی یا نخی ما هر همونی اینه که اگر نحیم باشه اسم توش داره نفی هم نحیم داری، نحیم باشه نحیم این رو هم توش داره حالا بحثش یکی می‌خوام بگم وصول بیش از در خارج میشه در رابطه با خیلی لازم پس بحثی که در اینجا هست آیا خود واجب وجوب حسب وجوب حالا یا کفایی باشه یا اینی باشه یا تعینی باشه یا نفسی باشه یا غیری باشه هر نوع وجود وجود طبیعتا با اخذ اجزای شرایی چند چرا روی که از این تحلیل ها یا بگیم طبیعت وجود این از که فعل رو از اختیار شخص خارج میکنه یه فعل اون نیست اگه فعل اون نبود یه حرمت نداره یه احترام نداره هر یا اصلا خوابیده خوابیده باید این کار رو مجانا انجام میده و اینشاد ها خواهد آمد من سا استفاده این مساده و از حجوم خیلی مشکله چرا بعض از خواهیم حقیقا وجوب تا اینجاها رو شامل بشه به این مبانی از وجود در بیاد این الان مشکله از اللی ما وافی نیست فهم و ارفی و سیر و اقلالی و قوانی و اعتبارت و قانونی موافق نیست این مثلا بگه درباز کننگی درباز کنن کن. فعلتونیستون همون تو اون نیستون مثلا باید حتما احترام نداره درباز کردن خیلی که انجام از از در نمیاد احسافت نمیتونیم ما با این مقداری که با فهم قانونی داریم این مسائل رو اثبات می‌کنه پس اخذ اجرت بر او مطلق اگر تعیین علی قضا ولم ظاهرا از این جهت مشکلی نداره بحث پنجم بود یا شارهم پنجم ظاهرا اهمیت مقام قضا بود که این بچه به دلالت شرایط واقعی هم همین بچه گرسه از سنیان لا ما همین وجب لا ناخذ اجرا علی این بود یعنی انصافا با مجموع آیات یا داود (ع) الله جل که ناس کل یعنی انسان احساس میکنه که این میگه مقام خیلی بالاییه مخصوصا وقتی پای خدا و دین و وحی و غیبت و قیامت و ندر و معاد چون این تو این چیزایی حکم الله و راد و عادله و, و, و, و علینا و مقام اهل بیت و الله و... انصافا به ذهن انسان میاد که ارتباط دادن او به پول یک مقدار این مقام رو میاره پامیش شد. من تعریف نمی‌کنم. چون واخدن به نمی‌شه. دیگه. قضاوت نداره من ممکنه ممکن یک سال دیگه زن. بعد ببین کشور خارجی چه در چه مشکلی رو. صورت دستم یک دادجای گوشی شیک مهمه اصلا که مراجعه نکرده تازه یک مراجعه کردم اسکی بالا بوده گردشش چند تجربه داشته که شفاعت یکی در این هر یعنی بعض جوریه که نیازی منظر مصلح به جهودش مخصوص منظر یعنی اون یک فهم اوغلایی هست که قبل از شریعت هم بوده خود پیغمبر اکرم هم ازش کرده اون فهم اوغلایی رو قطعاً پیغمبر انزا کرده هیچ بندیش نیست از ظن رو فقط در این که أهلی سر نبازش نکن که خود پیرنام برم پول قرار داده برای خازیز بده. حالا اون ثابت نکرده باشه که یه واضح واضح نیست. اما از اینکه خود پیرنام برم از آبک میکنم و اصل اینکه پیرنام برم پول نگیرستن این جوی بحثیه. و از اینکه پیرنام برم آذیت دادند بر اهلی یمن و جاهای دیگه اینجوری بحثیه. یعنی اینکه هم به اقلایی و هم به تبعیز جوی بحثیه جلوی صحبت ندارند. پس نابر این این وجه پنجم، اجمالا به نظر من بد نیست. اجمالا الان بحث تعامل می‌کنه. بله، که همین مشکل احسان. بله، بد نیست اجمالا حالا بعضی از رویاتش مثل مجلس لاین صد نبی او نبی سرش مشکل داره. به من هیصل مرجوم با مراجعه به آیات و روایات و شعر بازی و تحکیم قاضی و منصوب منقبل اهل البیت. آدم همه همون هم بلیجه یک احساسی می‌کنه که شاید این وجه خالی از عبت نباشه مدافر این که من عرض کردم مدرده از مسائل ممکنه که تک, تک تک وجوه رو کافی نبنیم همون من حیث المجموع که با هم بریدیم مخصوصا مثل کتاب دایم یا در این نقطه رو ارض بکنم کتاب دایم غیر از سمه ما این نقطه چند بار عرض کردم که جایی توجه داره کتاب دایم فتحشی به طور کلی مشکل داره که در بخش حکومتیش چون حکومت دست بوده بیشتر یا مال اوناس یا مثلا ما همینطوری به طور کلی برس بده خلاف اهل حکومت دستشون بوده فتح دائما این نکته رو داره و این نقطه است که الان خیلی مهمه ما از کردیم انصافای شواهد نشونده که زفاست و فیغمبر چه هم کرده فیغمبر چه هم که زکات و جمعه زکات یک پدیده حکومتی بود الان هم در کسار سری را میکنم چرا سنویی زکاتشون درشتراحات درکه ماشی آخه اینجور نیستی اون بگیر زکات رو خود به فقیل برنس این پدیده فقیل شدید چون حکومت دست ما نبود زکات از اون پدیده اجتماعی از این پدیده پردیده. ضا اگر ما بودیم و مختظه مورد الله ح میکنیم که چون ق سال هشتم گرفتن سال نهم که فود کرده سالی 11م ف کرد یعنی سال هم جمعکن سال نهم گرفتن و سال دهم سالی 11م که تدیده ذکار پدیده جمعی است انسان پدیده چند دولتی حکومتی مظهر حکومت مثل ماری از مظهر حکومت اما ما شد روایت بود اگر روواردن نبود، دادانتون به حرف اگر بصوری هم زوال کنید ما چون روایل از اهل بیت داریم که از زکات رو خود فقراسون بدید تا اگه بخوا اول اون‌ها بدی برگردیم دو مرحله بدید به خاطر این جهت یعنی این نبود و ما در بابه ارتزاق از قاضی اونی که داریم بیشتر چیه مسئله حکومتیه شما نداشتیم سرکان نداشتیم قاضی هست اما نکته‌ای که در کتاب جواهرم هست اینه اون مفید دانه اینه که دانه چون حکومت مثل دستشون بود اینا در دولت فاطمین ها یا اسماعیلی های بودن حکومت دست اینها بود چون حکومت دسته این ها بود لذا که تا یک دانه به لحاظ حکومتی بهتر از فرتمانه بشته نه چون زد دانه بودن اصلا دستگاه رو در مقابل بغداد درست کردن همین دعایی در اولش یک فصل در نقیه ابو حنیفه و شافیه و مالک رد میکنه پس اول دعایمون اسلام داده غیر از این تامیزان بداخل شیعه های تنروی بودن تنرو بین معنی شد قارب تشکیل و حکومت سیاسی بودن حکومت و و دولت بودن غیر از این جهتش هم رد میکنه ایشون احتمال اینکه مثل تغییر همون کشنابیشون دولت در چیزون بود و داشتن دول و چون این کتاب این مزیتو داره یعنی این کتاب دائمی یک جنبه ی حکومتی هم داره در کتاب دائمی فرض رو ببین اما اجرت نداره این مسئله اونم نداره شده می‌کرد این بوسته این قانون یک آین نامه به اصطلاح در دولت فاطمی مطرح بوده برای قاضی رز قرار بدین اما پول قرار ندین اجرت قرار ندین و کره هلوه ماضی هم یعنی هم بلدر عجم نفخ قصوم بودن این که انصافاً از این لحاظ کتاب دایم یک مزیتی داره چون کتاب دایم از با عنوان فقط خفه اسماعیگی ها نبوده آن این نامه جولت هم بوده دوره خفات میدن اصلا الان اسماعیگی هایی که متدین هم نه اسماعیگی لاعباریم سه آخانی هم اسماعیگی در همه هاشون، دعایی پرند کنند، دعایی چیزی را در و این کتاب جمعه حکومت داشته شده شو انصافاً این جهت کلمات اونها به این شده مطلب به حکومت هست چرا به حکومت هست؟ خواهدی خواهدی خواهدی مناسبت هم کنیشه چون مناسبت دیگه حالا من فرمانده ی ارکشم که دازه بقا کنیدیم فرمانده ی سرانجام به این معنا نداره اما بقا چه باید اصلاح ده ده باید داره داره. یا بقال شما بخواید با یک حساب اختلاف کنید پول می‌گی با هوف بخفن این چه معنا داره اون چه بناسوجی معنا داره میگه آ من مستاندارم بیاد از بقال پول بده و مستاندار از طرف دولته بله الان اینجا ما بخواید متعرض بشیم یه خری چند تا از سران رو بسیم داره که خانه یه خری ای که اگر واقعا بازی مرد واجده شرکتی هم هست و واقعا هم مشکل داره نه که بخواد پول از طرف بگیره یا خب من بلاخره باات کار بکنم فکر بکنم برناوزدی وقت خودم بر شما دام و بعض مادیش هم قرار احتیاج داشته باشه کفایت نداشته باشه زدید اینجا بر این نیست بتون اجرت شده گرفت و یه چیزی شبیه اجرت حجرت نیست. با این توضیح که از خریم رسی رو که قاضی میگیره از عنوان بیت المال میگیره ما از خریم مجموعی که ما از عدل داریم چهار محطی از بلایت اثبات میشه یا پنج مرتبه. اول ولایت الله هست چون از سفران به ولایت تکیمیه اصلا بالاتر از این ولایت تشریگی رو نهار دوم ولایت رسوله که با اولاها مثل نبوبه منزله منظره عرب بورن عرب آدم روشون اون ولایت رسول هم که به نفس داره مورکه هست اون هم حالا یک چیزی شبیه همون از ساله و مخارق الله هست الاخر بعد از اون ولایت امام معصومه که اون محلس کنن زدن به حاکم و حکومت ما زدیم به امام محصوم که با امامه من زدن نفس رو نفس عالمون مرحله بعدیش خبیلی همش پیهی ده. خبیلی مرحله بعدیش مرحله بعد بلایت فقیه بعد از محصوم که اون مرحله بلایت فقیه کسانی که قائل هستن که خودمون قائل هستن که فقیه در امور اجتماعی اداره اجتماع به نحو اوغنایی و به نحو صحیح و با مقدمات معبوده و معروفه که سابقا ارائه کردیم فرید ولایت داشته بود محبودی و, و ولایتش هم شرط اساسی یعنی تا مشورت و استشاره نباشه اصلا ولایت اون نافذ نیست hukum نیست یعنی اگر فرضین یه برنامه نظامی داشت باید با متخصصین کامل نظامی بحث بکنه اگر برنامه به اصطلاح فرهنگی داشت برنامه اجتماعی داشت، اقتصادی داشت، باید با مشورات بسیار کامل و بسیار دقیق این کارها رو انجام بده، و الا حتی اگر خود صادر بکنه فلان چیز رو ارزش حداستون نیست بدون مشارت و بدون نظر سنجی های جدی و بدون اطلاع دقیق از موضوع یا تا موضوعات موضوع و خصوصات موضوع، جدی که این حکومه که خود صادر کمیه عالی در درجه بالا باشه. پیر هم در موضوعات خارجی حالا شرحش باشه مرحله پنجم ولایت و قدول مؤمنینه به تعبیر آقایان و این پنج مرحله ولایت به استثناء ولایت فقیه بنابرای مشهور در قرآن آمده ولایت فقیه هم به از برای روایتی که زهی بکسن از این مرسل ما رسیده فیران در تفسیر عیاشی و اخبار را را را در ذهب این که ولایت ربانیون که این هم به منظره تقییم مثلا اما خب روایت یه ضریفه از این آیه نمیشه استفادید روایت ولایت حضرت هم و قیرم برکن و این معلیه مستوام که همون آیه معروف عصی الله و عصی الرسول و رو الامر من ولایت مؤمنین هم آیه مواره که از مؤمنون و المؤمنات به از هم او یا وقت این هم یک درجه از ولایت که جامعه اسلامی خودش داره مؤمنین و مؤمنات این درجه از ولایت ا حالا یکی از بحثی که همیشه در الان هم در جامعه ما به این شکل رسمیش مطرح نشده اما مطرح هست برای ها اون نظر مردم و که نظر مردم دارن ظاهر آیه مبارکه از مومنون های مومن های مومن این است که مومنون خودشون بلایت داره بنای فوق های ما هم بر همینه در جاهایی که تفاوت نوشته خود او ادله مؤمنین ولادن. ظاهر آیه وارا که این مرحله از ولایت رو وقت جمع بین آیات و بعد مجموعه ای از آیاتشون ولاده. فکری در روایات صادر شده و از زمان امام صادق از علما قبل هم نداریم اشتباه کرد. ولایت خفیه از اون زمان. شرما شرح فکر کن که اینجوری جشن نیست. ولحیم ولایت خفیه با ولایت امام با ولایت فرمانبرد با ولایت حضرت حضرت با ولایت ادله مؤمنین. یه ترتیبی هم داره سیر تسلسلی هم داره همچون که از خواب ما قرار دادن ودایت فقیق قبل از ودایت عدود مهمه و همگه واقعا مازی مشتریدی و واقعا مشتریدات مالی داره و برای زندگی خودش گیر گیردرست اجورت گرفتنش را درست نباشه اگر چون برای ما احتیاط عجوبی قریبه به اقوان قریبه به تطوان مجموعه ادلله خیلی خویه سارا ب اما باز به منور که اون بتونیم مثلا حجج رو به بین الله یاد پیدا بکنیم مشکل. ترتیب را جستجو استفاده کردیم. از مجموعه آیات نه نه تو مثلا ولایت و دول بعد از ولی فقیه باشه. زانید مشین طوری که باز مجموعه روایاتی که در باب ولایت و معرفت‌ها اومده این چون ولایت فقیه سلطه که صاحب فقیه المؤمنین. علی رضی الله جلاله و قدس امام همین فهمیدن. سند درست حسابی نداره. درست. خدایی تا تفصیل ای عاشق فرمانده جمل از اون که میخواد ولایت رو از قرآن در بیاره بعضی‌ها از اذن امر در آوردن گفتن اولام شالکری هم شعال الان اصلا هیچ کلمه‌ای در نمیاد ولایت فقط از قران در از روازی الان شخصی که از ولایت اصول معدلین نخط نشه نه مقدم برادات و دلیل تقدمیتش چیه ها خود ولایت مؤمنین که هست تو قرانه چون در روایات یعنی ما چون معتدلی این روایاتی که جنب وقتی می‌ذاریم مشخصه این روایاتی که میگه مثلا اللهم الرحم قلاقی الی چنین بعدی که ادعیه مثل ابن راوی بعدی متمسکه این آیات یا علما اینها بیا اینا به درد کار نمیکنه نمی‌کنه این مقامات بزن به اصطلاح معجبه 50 شریعه عملی هستن که با جامعه باشه عقلی باشه اما اینا به درد اداره و اداره جامعه و به سر کیفیت اداره جامعه و فلس یعنی تفکر کیفیت تنظیم روابط اجتماعی میونه اون یکی که در روایات ولایات فقیه هست سه تا روایت اساسی بقیهش به در 10 تا 20 تا سوال ذکر شد اون در سه تا رواتش به در در اساسی نیست یکی عمر هندله حنظله فهمی قجاع و حاکم یکی فرخدی از و دیگه حکمن ولی از فهمید قجاع دو قاضیه یک کم و عل مهار سواله ترجمیرا سفر روایت که به نظر ما اینها ارزش دارن البته بعضش استراحتش بیشتره بعضی استراحتش کمتره سه منصب رو از این سروايت روایت ها استفاده کردیم و نه بحث غیبت هم به طور مخره نیست غیبت در اصطلاح اینجوری که ما معصوم نبود چون امام در مدینه است شیعه در خراسان از زمان بود امام غیبت زمانی که ما در هیچ روایتی هیچ حکمی نداریم تو که در غیبت موظن چه چیزی چند تا دعا داریم که در غیبت موظن دوار بخونیم ما مثلا توجوهات اخلاقی اما هیچ مثلا نماز نمازجون در زمان غیبت رو هیچ روایتی ندام که نمازجون در زمان غیبت عنوان زمان غیبت در هیچ حکم فقیه ما وارد نشده دعا را الله معرف نفسه رو ذرا به لیکن لا تعین نمعرفه نسبت از یه بسیار دعا داری بسیار حالات انتظار اینوی چیزا هست اما این که مثلا بگیر نماز جمعه جماعی توش امناده امناده حال قیبت ولاد فقی حال قیبت توش ادل قیبت فقی حال قیبت نیمده هست در قیبت امام هست اما مفروض کلام در وجه که که به امام داشته چون در دوران نیابت خاصه هست اون دو سلواز هست که با وجود امامه سلامت الله سلامه حالی پس بر قبل تققییم عرض کردیم از روواردش امام شااد باشیم ما از ما واقع از سجاد نداریم نه متسگی نشدن برای این کار این جزی چیزهایی است که بعض اماام صده متصدی شدن و خلاصه تنهاح هم عرض کردیم چرا از کردیم چون در اون زمان از زمان امیر و معی برداریم بسیار سنگینی در دنیای اسلام در رابطه با حکومت های را افادده بود. که ادعای در قيام مصلاحه نمی‌دن مثل زیدی‌ها یا مثل خوارج. یه گه هم می‌گفتن نه قيام مصلاحه نقد تحصیل بشه. انواع را یه زیدی مثلا خلیفه فاسد ظالمه، لكن واجب اطاعت یه چیزی بودن؟ خلیفه هم نامروزی انگار هم بده. قبول بکنی. بحث ظالم و فاسد داره مطرحه. خیلی آراء مختلف. و نگاه بکنیم در کُل دنیای اسلام آراء عجیبی که حالا به طور کلی مطرح شده. عسكر طرح امام صادق یک تدیست که در میان اهل سالت هم نظر من روی. حاصل اون طرح این بود که جنگ مصلاخانه نباشه قیام مصلاخانه نباشه لاکی تسلیم حکومت هم نشین خودشیه بین خودش تشکیلات اداری داشته باشه است و این حکومت در سایه رو عمل حکومت در حکومت یه نوع حکومت در سایه رو امام طرحش کرده عسكر ابن ابو حنیفه این طرز داره سنیای دیگه داره شافعی داره نه و خواریج دارن نه زنگی ها دارن امام صادق ترشون این بود که شیعه صلاح نیست الان بیا مصالحانه کنند در مقابل حکومتی بیستم اجازه مؤخره شیعه در مخد دنیای اسلام بمونه تا در سایه خلافت مسیری نمیخفه تا پیش خلیفه در متن دنیای اسلام بمونن چون اینا مصالحانه یک لازمی خارجی این بود که همیشه مثلا تو حاشیه چون قدرت مرکزی قوی بود و نا میگن اینا میرفتن تا مثلا سجستان و تا یونان و شمال افریقا و همیشه این گروه های منحرف مثل خوارش در این راههای دور رو مثلا یه حکراز محلی در این خود اونجا خب شیعه به خاطر اینجا در متن دنیای اسلام بود. چون هر کدوم مصلاحه تو بغداد بود تو مدینه بود تو مکه بود تو متن دنیای اسلام حضور داشت اینطور طورام که به خاطر حکومت زیدی ها نه حضور نداشت اینا یک مطلبی است که من چرارا اخیراً گفتم هم یک در همین دنیای معاصر مثلا در تشکیل جمهوری اسلامی در ایران ما در دنیای علم و اهل سنت حضور پیدا بکنم از هر حضور پیدا بکنم توی علماشون این حضور ایران و عنوان مرکز تشایی یا قالبا بوده چیزی به عنوان حضور سیاسی بوده وقتی خوب بود میرفت برای حضور بندون شد که خیلی تابع تابه سیاسی حتابی شد نه این که یک دنیای علم و عرضش های علمی رو برگرده بود عرضش های تو یی ندارام که احترامش رو شک رو می‌کنه که و رافضی و شرک و کفر الهه. ولی فرجتون. اگر اون احترام خوب بوده که اینچو می‌گرفتن، ولی رو می‌کردن به فاحشی رو، شیرا بدنام کردن. اگر این درداشته می‌شد همون طرح اساسیه، یعنی همون احترامی که امام باقر یا امام صادق در مدینه داشتن، ولی مدینه تضادش مخالف اونها بود. ما مثلا چهار تا عالم شیعه هم در مدینه داشتیم، همون احترامی داشت، خیلی نتیجه‌ای که گرفتم چون طرح می‌کرد. الان ما بلکه عالم ما هم بهتون مگیدم نظری که به اون صادق باشه نگاه نمیکنه فلسفه کذبی که اینا از مصمومی که مثلا وهابیا سبن الله وجوها ما ایجاد کردن درazem که ما کام این بحث به جای تقی حموم اعتراض شدیم این اون که ما میفهمیم از مجموعه این سه تا روایت حالا تفصیلش ان شاءالله بعد کلی گفتیم در دیگه از ده خالص می‌نمید رو که ازش کنیم سه منظر رو ما داریم سه مطلب رو از این روایات داره تقی یارو همین 2 عضو در اقسام یکی رجوع فقیر در قضاوتها یکی رجوع فقیر در, در اداره جامعه اما خب ادعای از آقایان رجوع فقیر بر اکسا فهمیدند و ایشان شب خطا درصد طرف ما رجوع فقیر رو به اقسام و قلاوت فهمیدند اما رجوع در این در قضاوت اداره اداره جامعه این هم ولوده فقیر که ما داریم هررج یعنی ی علاقات آاددی سنا هم حواسه واقعه پیچ مشکل نداره که هرسه رو شامل بشه. در جایی که فاس به فص شما راش در جایی که نیازه با خصووم در و خصوومت خورج شده یا اون حال آنان بازی ما در جای هم که اداره جامع است بر گرد روف ها اما با یک زمانی و با یک شدی که الانجا اینجا نیست یه هم بخاطر ها که فرموه بعد از او بهلا عضود ما نمیگه خودش محخصو پس بنابراین تر این تره این شد اگر حکومت را ولی فقید و فقید متصدی منصف قضاوت و برش قرار داد که اهلا و سهلا قرار نداد از اجار از متخاصمه روشن نیست حتی اگر احتیاج باشد در این صورت محتضای قارجه با ولایت قدور مؤمنین مثلا به مومنی این آقا میخواد قضاوت بکنه فقیه هم هست امکانات مالی هم نداره جمع بشین هر کسی مثلا یکی ده هزاس هم ها ببین که خود این جامعه اسلامی بفت کرد این شما ب... خوضات خود خوضات منسوب احسن. احسن احسن این قجرت برگیرده به ارتضاع بگم یعنی ارتضاع لازم نیست که ما دائما از حاکم و سلطان و فقیر و ولی و از از می از خلیفه احریان مؤمنین از او قرار اگر ق نه به عنوان اجرت از طرف این در یک نوع به قاضی بلایت قدور مؤمن به اصطلاح ما یا به همون قاضی قرآنی المؤمنون و المؤمنات بعضاها ما اولیابند به لائه تا آمنه موسیقی اگر باشه اگر ثقیه باشه و میشه کار ب حال ده هم به حال انار محاج و ال مشتاق و یخاج و قابله و حال آن حال در قا مختاج خنح نوزیر و قا مثلا یک حکممت جمهوری ی رو آرا مردم جو میید تا اینکهطور صبی مثل پادش و مردم روی را روی بل فقی مثل یک جمهوری اصستای با آار مردم مثلا شبیه هم میشه بگیم خود مردم به عنوان اینکه ولی هم هستن ال مؤمنون و المؤمنا بعدوها اولیاء و اینا خودشون بیان یه نظام قرار بدن میگن آقا ما میایم ماهانه اینقدر ما قرار می برای بازی مثلا یعنی به عبارت اخر باز هم اجرت نشه شو اجرته علی مردم گرفته بشه تحلیل قانونی شوشه شد تحلیه قانونیش تفسیر آیه مبارکه ال مؤمنون و المؤمنا بعدوها اولیاء و دیگه در اصطلاح فقها ما شده ولایت عذور مامنین بعد از تغیان ولایت فقيه حالا میشه این یه ذره حضور بونه ببین ترتیب بحث پس اینم یکی از رویکردهای روز اکثر اشاره میکنه بهش این بود که اگر واقعا قاضی محتاج بود یا به هر حال نیاز در جامعه احساس شد که ما یه قاضی میخواهیم ول اون که موردی نه احساب بکنیم بگیم ما شما بیا قاضی بخوب برای من شخصی مثلا این قصه یکی برای عوض کردن کنه سو کشون یا راحت حضور به تضییقش با شاشش دوش جون بزول فاشه های شده باشه خبت ها نمیشه خبت ها خلیفت خب من زمین بگیم ما بگیم شبیه این کار این طب تفسیر قرآن وقت زابطه درش قرار دیم همچی پادر حباش من در یه و جوهی یک زابطه قرار دیم رأی مردم بشه نظر مردم بشه یه طب توجود به مؤمنین و مؤمنات بشه با نظر اونها انتخاب بشه که یعنی خیلی همچ خیلی حرف فقیقی در هوای نسلیم یک حساب کتاب یاد برش بگذاریم اون حساب کتابش المؤمنون و المؤمنات ولذا خوب به قسم بکنیم تو این مرحله از ولایت خانوم ها هستن ظاهرای وارکی اینه اون روایاتی که میگه زن متبدی نمیشون مرحله اداره جامعه ولذا در یک ای که ولایت برگشت به مؤمنین ظاهرم این مرحله ولایت فرقی به این مرد و زن و ولی مؤمنون دینه مشاق... در بحث یکی وقتی که آموزش پاییدان اضافه سوال که یک توریه این مسائل و تفقیقش با مشاک مشاکی دیگه ای در دنیای اسلام پیش آمده احتیاج به بحثی داره که البته ماکان با مراجعه به عموم مؤمنین و مؤمنات یک برنامه‌ای در نظر گرفته بشه یک حکومی رو برای قاضی و منصب قضاوت در نظر بگیرن که این منصب هم تو جامعه اداره بشه پس رزق قاضی منوط به این نیست حتما از سلطان یا حاکم یا خلیفه باشه توی این مرحلی ولایت هم که ولایت مؤمنین بعد این برده بعد این هم میشه تصور کن این دیگه اجرت میان این هم این نهر خلاصه امتلا پس اجرت متنهل میشه در اونجایی که متخاسمه ایم فقط پول بدن که این کار بمانه اما اگر متخاسمه و غیره متخاسمه ایم پولی میدن که منصب غذابت در جامعه باشه این هم جزه ولایت حساب میشه که ولایت در خطب ما آمده ولایت و عدول ظاهر آیه مبارکه بر مؤمنان المؤمنون بعضا اولیاء و جامعه اسلامی بروشه به جامعه اسلامی ما این کار را انجام بدیم صلی الله و